فصل هفتم. دکتر در شهر آدم بیگانه ای بود او اینکه امیدوار بود که آن باشد تلاش می کرد که مردی اجتماعی و سمیمی جلوه کند اما خون خونسرد و بیاتفه می نمود. بین مردم مکندو زندگی می کرد اما به دلیل خاطری از گذشته که به نظر می آمد هر نوع کوششی برای اصلاحان بیهوده است و آنها فاصله داشت او را با کنجکاوی نگاه میکردند. مانند حیوانی افسرده که مدتی مدید را در تاریکی گذرانده و دوباره پیدایش شده باشد و رفتارش چنان بود که مردم شهر او را با حیوان یکی میدانستند و از این رو به او بدگمان بودند. با فرارسیدن شب از مغازه سلمانی برمیگشت و در به روی خود می‌بست. مدتی بود که از خوردن شام منصرف شده بود و در خانه ابتدا گمان می که او خسته و گفته برمیگردد و یک راست به ننوی خودش می رود که تا فردا بخوابد اما مدتی نگذشته بود که متوجه شدم شبها در او چیزی خارق عاده رخ می دهد می توانستی بشنوی که با عذاب و اصراری جنون گردا گرداگرد و اتاقش راه می رود. انگار در آن شبها روح مردی که تا آن هنگام با او بوده در او رخ نمی کرد و هر همان مرد سابق و هم مردی که اینک بود در کشاکشی خاموش به هم جوش خورده بودند که در آن میان مرد سابق از تنهای سرشار از خشمش از شیوه کنار جویانه قاتش و از منش سخت گیر استوارش دفاع می کرد و مرد کنونی با اراده‌ای هولناک و تغییرناپذیر می‌کوشید خود را از چنگان مرد پیشین که در او بود رها سازد می‌شنیدم که تا سپید دم گرداگرد اتاق قدم می‌زند تا زمانی که خستگی و کوفتگی او تبان دشمن و رقیب نامرئی‌اش را میفرسود. از وقتی که او دیگر زنگال به پا نکرد و هر روز دوش می‌گرفت و لباسهایش را با آب خوشبو معطر می من تنها کسی بودم که به میزان واقعی دگرگونیش پی بردم و چند ماه بعد تغییر و استحالش به حدی رسیده بود که احساسم نسبت به او از حالت بردباری فراتر رفت و به شفقت و دلسوزی بدل شد غیافه تازش در خیابان نبود که مراتکان می داد بلکه فکر اینکه شب تویان اتاق درها را به روی خودش بسته و گلپوتین را پاک می کند و پارچه کنه را در لگن دستشویی خیس می کند و کفشهایش را که به خاطر پوشیدن مداوم در تی سالیان دراز فرسوده شده بود برق می اندازد تکانم میداد. آنچه تکانم میداد فکر برس و قوطی واکسی بود که زیر تشک دور از چشم دنیا نگهداری میکرد. گویی اناسری از یک گناه شرماور و پنهانی و در تضاد با زمانه بودند که بیشتر مردم آرام و منظم می شدند و شیوهی برای زیستن می آفتند. به جای همه ی هدفهای عملیش دست به کارهای کند و بیحاصل می و مثل تازه بالخا بیش از حد به سروازش می رسید. هر شب بالبی دستش لباسش را با خون سردی صاف می کرد و آن اندازم جوان نبود که دوستی داشته باشد که بتواند با او درباره اوهام یا سرخوردگی هایش به گفتگو بنشیند. شهر نیز گویا متوجه تغییر او شده بود. زیرا اندکی بعد این زمزمه در شهر پیچید که دکتر عاشق دختر سلمانی شده. نمیدانم این حرف پای و اساسی داشت یا نه اما مسلم بود که تا اندازه ای این شایعه مرا متوجه تنهایی حولناک جنسی و خشم جسمانیش کرد که میبایست آن سالهای کسافت و انزوا عذابش داده باشد هر روز بعد از ظهر او را در راه سلمانی میدیدن که بیش از پیش در لباس پوشیدن دقت و وسواس به خرج داده دیراهنی با یقه مصنوعی و دگمه سردست های طلایی و شلواری تمیز اوتو کرده به جز این که هنوز هم کمروندش را از پلهای کمرش رد نمیکرد به خواستگار پریشان و مهنت زدهی می که در حالهای از اطر و اده ارزان قیمت پیچیده شده باشد. خواستگار ناکام ابدی عاشق وقت برگشتهی که همیشه در نخستین دیدار دست گلی کم دارد. در نخستین ماه‌های های سال 1909 وضع دکتر بدین منبال بود. هنوز شایعه ای که در شهر زمزمه میشد پای و اساسی نداشت مگر اینکه او را هر روز در مغازی سلمانی میدیدند که گرم گفتگو با غریبه اما هیچکس کس نمی با اطمینان بگوید که حتی یک بار او را با دختر سلمانی دیده است. من به قصاوت و بیرحمی این شایعه پی بردم. در شهر همه می که دختر سلمانی دیگر برای همیشه یک پیر دختر خواهد ماند آن هم پس از یک سال پر از رنج و مهنت که روحی او را تقیب می کرد نامرئی که روی غذایش کسافت می ریخت و آبش را در کوزه گلالود می کرد و آینه هایش را در مغازه سلمانی تیر و مه گرفته می نمود و چنان می زدش که صورتش کبود می شد و از ریخت می افتاد. تلاش طوله با کوبیدن نوار بر پشت گردنش روان درمانی با آب مخدس یادگار دیسان و مزامیر که با اشتیاقی نمایشی اجرا شد همه بیهوده می نمودند. سر انجام زن سلمانی دختر افزون شدهش را در اتاقش زندانی کرد. گرداگرد اتاق نشیمن برنج باشید و او را در ماه اصری تنها و بیروح به آشغ نامر ایوا گذاشت و به دنبالان حتی مردهای نیز گفتند که دختر سلمانی آبستن شده است. هنوز یک سال هم نگذشته بود که مردم دیگر منتظر حادثه حیرت آور زایمان او نشدند و اعجاب عموم به این عقیده تبدیل شد که دکتر عاشق دختر سلمانی شده. هرچند کمه میدانستند پیش از آن که خواستگاران احتمالی بتوانند به مردان در خور عروسی بدل شوند این دختر افسون شده در به روی خود بسته و برای بقیه عمر خرد شده بود برای همین بود که من پیش از آن که دچار گمان و پنداری باشم مسلم میدانستم که این حرف شایعی ستم گرانه، و توت ای بدخواهانه بوده است. اواخر سال 1909 او هنوز به مغازه سلمانی میرفت و مردم حرف میزدند و در تدارو که مراسم عروسی بودند بیان که کسی بتواند ادعا کند که وقتی او آنجا بود سر و دخترک پیدا شده یا اینکه حتی فرصت حرف زدن با یکدیگر را پیدا کردند. در سپتامبری که هوا به اندازه این سپتامبر سوزان و بیروح بود، یعنی سیزده سال پیش، نامادری‌ام به دوختن لباس عروسی‌ام پرداخت. بعد از ظهرها که پدرم در خواب نیمروزش فرو میرفت ما کنار گلدانهای روی نرده، نزدیک آن اجاق سوزان که همان بوته یکلیل کوهی بود، می نشستیم و گرم دوختن می شدیم از سیزده سال پیش و تا پیشتر سپتامبر برای من همیشه همین طوری بوده چون ازدواج من قرار بود مراسمی خودمانی داشته باشد چرا که درم چون این تصمیم گرفته بود ما با توجه دقیق کسی که هیچ شتابی ندارد و بهترین ایار وقتش را در کار کند و تدریج خیش یافته است آهسته در کار دوختن پیش میرفتیم و در آن حال گپ میزدیم. من هنوز به اتاق رو به خیابان می و می به خودم دل و جرأت بدم و به نامادریم بگویم که آن اتاق برای مارتین بهترین جاست و در آن بعد از ظهر موضوع را با او در میان گذاشتم. نامادریم داشت دنباله توری بلند را می دوخت و در آفتاب خیره کننده ی آن سپتامبر پر هم همه و سرشار از روشنایی توانفرسا فرسا چون این به نظر می رسید که تا خرخره در ابری از همان سپتامبرهوته میخورد. نامادریم گفت: « نه. و آن وقت همچنان که دوباره به کارش می احساس کرد که هشت سال خاطرات تلخ از جره چشمانش میگذرد و گفت: خدا نکند که هرگز کسی دوباره وارد آن اتاق شود. مارتین در ماه ژوئیه برگشته بود اما در خانه ما نماند دوست داشت به نرده‌ها تکیه کند و همانجا بماند و به نقطه مقابل خیره شود. خوش داشت که بگوید دلم می‌خواهد که بقیه عمرم را در ماکوندو زندگی کنم. بعد از ظهر ما و نامادریم به کشتزارها میرفتیم. و شامگاه پیش از آن که شهر روشن شود برمیگشتیم. آن وقت مارتین به من می‌گفت حتی اگر به خاطر تو هم نبود در هر صورت باز دلم میخواست در ماکان دو زندگی کنم و این حرف را طوری می که به نظرم راست میآد. در آن موقع تقریبا چهار سال می که دکترخانه ما را ترک کرده بود. درست در همان بعد از ظهر که دست به کار دوختن لباس شدیم، در آن بعد از ظهر دم کرده که درباره اتاق برای مارتین با نامادریم حرف زدم نامدریم، برای اولین بار درباره عادات عجیب و غریب او با من حرف زد. گفت پنج سال پیش او هنوز اینجا بود و مثل حیوانی خود را حبس کرده بود. برای اینکه فقط یک حیوان نبود، چیز دیگری بود. حیوانی که علف می‌خورد، نشخار میکرد مثل گاوی که به یوغش کشیده باشند. اگر با دختر سلمانی ازدواج کرده بود، با آن فریبکار کوچک تمام شهر را واداشت تا این دروغ بزرگ را باور کنند که او پس از آن ماه اصل مبهمی که با ارواح گذرانده آبستن شده است، شاید هیچ کدام از اینها اتفاق نمی اما او ناگهان از رفتن به مغازه سلمانی دست کشید و حتی با پس این دگرگونیش را نشان داد که فقط فصل تازهی بود از طرح و نقشه هولناکی که او با شیوه منظمی در اجرایان پیش می رفت. فقط پدرت بود که خیال میکرد مردی با چنین خلق و خوی پست باز هم میتواند در خانه ما بماند. مثل ایوان زندگی کند، در شهر رسفایی بپا کند و به دست مردم بهانه بدهد که ما را به چشم کسانی نگاه کنند که همیشه نسبت و اخلاق و رسوم پسندیده بی هستند. نقشه هایش با رفتن ممه پایان میگرفت، اما حتی پس از آن نیز پدرت نتوانست به میزان اشتباهش پی ببرد. گفتم من هرگز چیزی از این قضیه نشنیدم ملخها مثل کارخانه ی همه چیز را در حیات می جویدند نامادریم حرف میزد و میدوخت. میان که چشم از کارگاه گرد برودری دوزی بردارد ترها را بران میدوخت و و گلهای تو در توی گردن را نقش میزد. گفت آن شب همه دور میز نشسته بودیم به غیر از او چون از همان بعد از ظهری که برای آخرین بار از مغازه سلمانی برگشت دیگر هرگز لب به شام نمیزد که ممه برای پذیرایی آمد تو فرق کرده بود پرسیدم ممه چی شده؟ چیزی نیست خانوم چطور مگه؟ اما معلوم بود که حال درستی ندارد کنار چراغ ایستاد حالت بیمارگونه ای داشت گفتم خدای من حالت خوش نیست ممه اما او تا آنجا که می توانست خود را سر پا نگاه داشت تا اینکه سینی به دست به طرف آشپزخانه پیچید آن وقت پدرکی در تمام این مدت نگاه می کرد گفت اگر حالت خوش نیست برو بخواب اما او چیزی نگفت پشتش به ما بود و سینی به دست بیرون رفت تا اینکه صدای شکستن بشقاب ها را شنیدیم ممه توی ایوان بود و با هایش خود را کنار دیوار سر پا نگاه داشته بود آن وقت بود که پدرت به اتاق خواب به سراغ دکتر رفت که از او بخواهد نگاهی به ممه بیندازد نامادریم گفت در آن هشت سالی که در خانه ما گذراند هرگز از او به طور جدی درخواست مراقبت و معالجه نکرده بودیم ما زنها به اتاق ممه رفتیم با الکل تنش را مالش دادیم و منتظر برگشتن پدرت شدیم اما ای آنها نیامدند دکتر با همه این احوال که پدرت هشت سال آزگار جاو و غذا در اختیارش گذاشته و ترتیب شستن لباسهایش را داده بود و حالا هم خودش رفته بود که او را بیاورد نیامد هر وقت که به یادش میفتم فکر نمی که آمدنش به اینجا کیفر الهی بوده است فکر می کنم همه آن علفی که هشت سال به او دادیم همه آن توجه و مواظبت و آن همه اشتیاق و دلواپسی چیزی مگر امتحان از جانب پروردگار نبوده تا درباره دوراندیشی و ناباوری نسبت به دنیا درسی به ما داده باشد. مثل این بود که انگار ما هشت سال مهمان نوازی و خوراک و تمیز کردن لباسها را بر خود هموار کرده و همه را جلوی پای خوک ریخته باشیم. ممه داشت میمرد دست کم ما چنین تصورری داشتیم. و او درست همانجا خودش را حفظ کرده بود و از انجام کاری که دیگر نمیشد گفت کار خیرخواهانه سرباز میزد. کاری که می نشانگر حس احترام و سپاسگذاری و ملاحظه خش و خالی نسبت به کسانی باشد که از او مواظبت میکردند. پدرت نصف شب بود که برگشت با صدای خفه و ضعیفی گفت: کمی با الکل مالش بدهید اما دوا و اینجور چیزها چیز و من احساس کردم که انگار سیلی هم زدند. ممه در مقابل مالش ما عکس عملشان نشان میداد. خشمگین و از جادر رفته سرش فریاد زدم بله، الکل همین. ما به تنش الکل مالیدیم و او هم حالش بهتر شده، اما برای این کار مجبور نبودیم هشت سال آزگار مردم را از خودمان برنجانیم. و پدرت همچنان با فروتنی و مدارا و نیز با آن مسالمت و دلجویی بی معنیش گفت: چیز مهمی نیست دست آخر روزی متوجه می شوی. گویی کس دیگری بود که پیشگویی گویی می کرد آن بعد از ظهر به نظر می که نامادریم به خاطر تنین و شدت صدا و اوج کلماتش ماجرای آن شب دور را که دکتر از مداوای ممه خودداری کرده بود دوباره جلوی چشمانش می بیند بوت یک کویی انگار از روشنی خیر کننده سپتامبر از خوابالودگی ملخها و از نفس سنگین مردانی که می دری را در همزایگی ما از جادر بیاورند داشت خفه میشد. شد. هم گفت، اما در یکی از آن یک شنبه ها ممه با دک و پوز آراسته مثل خانومهای های متشخص برای مراسم نماز به کلیس ها رفت. همه چیز آنقدر خوب به یادم مانده که انگار همین دیروز اتفاق افتاده. آفتابی رنگ و رنگی هم داشت. ممه، ممه، این هم مكافات الهی بود. ما او را که از گرسنگی رو به مرگ بود، از پدر و مادرش گرفتیم، مواظبتش کردیم، سرپناهی بهش دادیم، غذایش دادیم و اسمی رویش گذاشتیم. اما دست پروردگار در اینجا نیز به میان آمد. وقتی روز بعد او را دم در دیدم که منتظر سرخ فوست هاست تا صندوقش را بیرون ببرند حتی نمیدانستم که کجا میخواهد برود؟ عوض شده بود و جدی بود. درست همانجا کنار صندوق ایستاده بود و با پدرت صحبت میکرد. الان هم میتوانم ببینمش کابللا؟ همه کار انجام شده بود بین بی که با من صدا هم مشورتی بکنند انگار که من عروسکی بودم که روی دیوار نقاشی کرده باشند پیش از آن که فرصت کنم و بپرسم که قضیه از چه قرار است و چرا بدون اطلاع من چیزهای عجیب غریبی توی خانه من اتفاق میافتد؟ پدرت پیش من آمد که بگوید نمیخواهد چیزی از ممه بپرسی دارد از پیش ما می رود اما شاید به زودی برگردد پس پدرت پرسیدم که او کجا میخواهد برود ولی جوابم را نداد پدرت پاهایش را توی آن کفشهای چوبیش به زمین میکشید انگار که من زنش نیستم بلکه عروسکی هستم که روی دیوار نقاشی کرده باشند نامادریم گفت فقط دو روز بعدش فهمیدیم که آن یکی هم بیان که شعن و حرمت یک خداحافظی خشک و خالی را نگاه دارد دمدمه های صبح خانه را ترک کرده است او اینجا آمده بود انگار که خانه متعلق به خودش بود و هشت سال بعد اینجا را درست مثل خانه خودش ترک کرده بود به این که خداحافظی بکند یا چیزی بگوید درست مثل دوستها فکر میکردم که بدنت دکتر را به خاطر اینکه ممه را مداوا نکرده جواب کرده است اما وقتی همان روز در این مورد از او جویا شدم تنها به این جواب اکتفا کرد من و تو باید گفتگوی مفصلی در این باره بکنیم و حالا چهار سال گذشته است بیان که هرگز موضوع را دوباره با من مطرح کند فقط در سایه وجود پدر تو و در خانه به هم ریخت و بی و ترتیبی مثل اینجا که هر کسی می‌تواند هر کاری دلش خواست بکند یک چون این اتفاقی ممکن است پیش بیاید در ما مردم از چیز دیگری حرف نمی زدند و من؟ هنوز نمیدانستم که ممه سراپا آراسته توی کلیسا سر و پیدا شده است مثل آدم بی سر و پایی که خودش را به حد دو یک خانوم متشخص رسانده باشد و پدرت هم آن اندازه شجاعت و اعتماد به نفس داشت که بازوی او را بگیرد و از میدان بیرونش ببرد. آن وقت بود که دریافتم ممه آن قطرها هم که فکر می کردم با ما فاصله ندارد بلکه با دکتر توی آن خانه سر نبش زندگی می کند مثل دوتا خوک رفته بودند با هم زندگی کنند. با اینکه ممه را تعمید داده بودیم، از در کلیسا هم رد نشده بودند. یک روز به پدرت گفتم، خدا خودشان بدکیش را هم کیفر خواهد داد، و او چیزی نگفت. هنوز هم همان مرد آرامی بود که همیشه بود، حتی پس از آن که مشوق رسوایی و زنای آشکار شده بود. و با این همه، حالا از اینکه اوزا اینجوری خاتمه یافت راضی هستم. آن هم درست به این دلیل که دکتر از خانه ما رفت. اگر اینطور نشده بود او هنوز هم توی آن اتاق کوچک بود. اما وقتی فهمیدم که او آن اتاق را ترک کرده و دارد جلو پلاسش را توی آن صندوقی که از در به خیابان رد نمیشد به خانه سر نفش میبرد بیشتر احساس آرامش کردم. این برای من پیروزی بود که هشت سال به تعویق افتاده بود. دو هفته بعد ممه آن مغازه را باز کرد. حتی یک چرخ خیاطی هم داشت. با پولی که توی این خانه کنار گذاشته بود، یک چرخ دومستیک نو خریده بود. من این موضوع را نوعی حتی به حساب آوردم و به پدرت هم گفتم. اما با اینکه به شکفه من جواب نمیداد. معلوم بود به جای اینکه ناراحت و اندوهگین باشد از کاری که کرده احساس رضایت هم می کند. گویی با آن بردباری زبان زدش و آن همه فهم و آزادگی و حتی اندکی بی با مخالفت با چیزی که برای این خانه شایسته و احترام آمیز بود روحش را نجات داده است. به او گفتم دو بهترین بخش اعتقادات را زیر پای خوک انداختی و او مثل همیشه گفت تو هم یک روزی به اصل مازو پی میبری